مرکز قلب ربازارتارز امشب حدود ده و سی دقیقه ظاهر شد کنار تختخواب خواب من نشست و در حالی که دست های چهار گوشش را به نشان تحکید سخنانش حرکت می داد به سخن گفتن مشغول شد ربازارتارز دیگر لازم است هر گونه تمایل به شکوه و شکایت از شرایط موجود را از رفتار خود به دودایی. چون فقط خودت هستی که قادری شرایط را به میل خودت دگرگون سازی تلاشهایت را در جهت تحقق این امر کار گیر که هم مقدورات ذهنی و هم منابع الهی خود را تحت فرمان داشته باشی چون قدرت واقعی تنها با کنترل این منابع نصیب میشوند در این باور اصرار بورد که آموزگارت همیشه با توست شكل نورانی من همواره یکایی که عمل کردها و فعالیتها نتیجه اندیشه های آگاهانه فعالیت فعالیتهایی که به صورت عادت در آمده باشند خود به خود رخ می دهند و افکاری که آنها را تحت نظارت دارند به اعماق زمیر ناخداگاه نفوذ کرده و شکل نورانی مرا هم با خود به آنجا نقض می کنند لذا این امر مستلزم کوششی قابل ملاحظه است. همه افکار باید به نظم خودکار برسد تا ذهن آگاه مجال تمرکز روی سایر موضوعات را داشته باشد موضوعات تازه هم به نوبه خود به عادت بدل شده و از طریعت ناخداگاه تابعیت خواهند کرد به این ترتیب ذهن از پرداختن به جزئیات یک موضوع فراغت حاصل می کند و به سوی فعالیت تازه‌ای جذب می شود. با درک این حقیقت منبع قدرتی را میاوی که در تطبیق با همه وضعیت های زندگی به می‌آید، میآید. عضو مورد استفاده ذهن آگاه، نظام مغزی نخایی و عضو مورد استفاده ذهن ناخداگاه، نظام عصبی سمپاتیک ماست نظام نخایی مجاری دریافت احساسات هوشیارانه از کالبد جسمانی و کنترل حرکات ماست مرکز این نظام عصبی مغز است. نظام سمپاتیک در مرکز دیگری به شکل توده ای تو مار مانند در پشت معده قرار دارد و به کلاف خورشیدی مشهور است و مجرای آن دسته از فعالیت‌های ذهنی است که اعمال حیاتی کالبد ما را آگاهانه تحت کنترل دارند. اتصال بین این دو نظام از طریق به نام عصب واگوس برقرار می شود که به منظله بخشی از نظام مختار عصبی از ناحیه نخایی عبور کرده و از انشاباتی را از درون قفسه صدری به قلب بریه ها فرستاده نهایتاً با گذشتن از هجاب حاجز یا دیافراگم قشا خارجی خود را از دست می دهد و همسان اعصاب سلسل نظام سمپاتیک می شود به این ترتیب پیوندی میان این دو نظام برقرار می شود که آدمی را به یک واحد مستقل فیزیکی بدل می سازد. مغز که عضو هوشیار ذهن است همه ی افکار را دریافت می کند. در این مرحله افکار ما تحت حاکمیت قدرت استدلال و منطق ما قرار دارند انگامی که ذهن هوشیار ما متقاعد شود که ای واقعیت دارد آن را به کلاف خورشیدی که مغز ذهن درونی ماست ما ارسال ارسال میکند، تا به جسم انتقال یافته در قالب واقعیت در جهان بیرون انعکاس یابد از آن به بعد مفاد به اندیشه مذکور دیگر به منطق و استدلال تندر نمی دهد زمیر قدرت استدلال ندارد صرفاً عمل می کند. این زمین رأی نهایی رکن هوشیار را به منزله حکم قائی می پذیرند. کلاف خوشیدی را آفتاب جسم نامیدهند چون نقطه کانونی توضیع انرژی است که جسم دائما تولید می کند این انرژی ها بسیار واقعی هستند و این خورشید هم به همان میزان واقعیت دارند انرژی حاصل از این مرکت هم توسط رشته های اثری واقعی به تمام نواهی اشخالی جسم فرستاده شده و به صورت حوزهای از انرژی کالبد را احاطه می کنن. چنانچه تابش این انرژی در فردی به قرض کافی نیرومند باشد جذاب به نظر می رسد. اطرافیان می گویند او از جذابیت شخصی برخوردار است چون این فردی می تواند قدرت هنگفتی را در راه خیر جاری سازد فقط حضور او کافی است تا آسایش را مرای ازهانی سرگشته ای که با او برخورد می به ارمغان آورد. بیماری جسمانی هنگامی رخ میدهد که آفتاب یا همان قلب کلاف خورشیدی به قدر کافی انرژی تولید نمی کند که برای حیات بخشیدن به بعضی از اعضای جسم بسنده باشد. بیماری ذهنی هم هنگامی آرز می شود که ذهن خداگاه برای تأمین نشاط و سلامتی لازم جهت تعادل حیات افکار و محیطش به ذهن ناخداگاه چشم دوزد به این ترتیب ارتباط بین ذهن زمین ناخداگاه و قدرت خدایی منقطع می شود کلاف خورشیدی یا مرکز قلب نقطه است که جزء با کل دیدار می کند جایی که محدود نامحدود می شود آنجا که ناآفریده آفریده می شود نادیدنی دیده می شود این نقطه قانونی است که حیات در آن پدیدار می شود و حد و مرزی برای میزانی از نیرو و عنصر حیات که فرد می تواند در مرکز قلب تولید کند وجود ندارد این مرکز حاوی انرژی بیپایانی است که حضور مطلق دارد چون نقطه برقراری تماس با کل حیات و کل هوشیاری است. بنابراین قادر به تحقق هر آن چیزی است که به سویش هدایت شود. قدرت ذهن خداگاه نیز از این مرکز صادر می شود. زمین ناخداگاه، آرمان ها را که ذهن آگاه به آن پیشنهاد می کند به مرحله اجرا میگذارد پس فکر آگاهانه زمامدار امور مرکزی است که حیات و انرژی تمام کالونها از آن فوران می کند و به این ترتیب طبیعت و قماش تجربیات جهان بیرونی فرد را تعیین می کند روشن است که همه آنچه ما نیاز داریم این است که به نور این مرکز مجال تابیدن بدهیم به میزانی که بتوانیم در این کانون انرژی تولید کنیم قادر خواهیم شد شرایط غیر قابل توضیح را به سرچشمه های شادی و نشاط معنوی تبدیل کنیم پس سؤال اصلی در اینجاست که چگونه میتوان به این نور مجال تابیدن داد و از چه طریقی باید انرژی لازم را تولید کرد فکر مقاومت ناپذیر مرکز قلب را گسترش می‌دهد و اندیشه مقاوم باعث انقباز آن می‌شود فکر دلپذیر قلب را می و اندیشه ناخوش آن را می‌بندد اندیشه شهامت امید قدرت اعتماد و مانند آن وضعیتی در انطباق با خود پدید میآورند. اما ترس علمدار دشمنان قلب است، چنانچه چه ترس را نابود کنی در میابی که حقیقتا با اک یکی هستی و با تجربه توانایی خود در فائق آمدن به شرایط نگوار می توانیم قدرت را عملا درک و شناسایی کنی کسی که میداند صاحب این مرکز قلب است، نه از انتقاد، و نه از هیچ پلیده دیگری حراس دارد اوقات او صرفا خرج انتشار انباج شجاعت اعتماد و قدرت می شوند. او با تمایلات ذهنی خود روح عشق می افکند شناخت قابلیت بشر در تبلیغ صلح و هماهنگی او را به این درک میرساند رساند که چیزی برای حراس وجود ندارد چون همکنون در تماس با اک به سر می برد شیوه طبیعی برای به ظهور رساندن هدف مطلوب این است که ذهن خیش را در نوری ساروب قرار دهی در این صورت نشان عشق بر مرکز قلب می نهی این راهی مستقیم است که متضمن نشات و آسایش ذهن و روح می باشد زمیر ناخدازاه بخشی از ذهن کیهانی است ذهن کیهانی اصل یا نیروی منفی عالم قلم داد می شود جز همیشه از نظر قماش و کیفیت همانند کل است یعنی نیروی آفرینش بی بیپایان و نامحدود است هیچ حکم از این شده ای بر آن واجب نیست و نتیجتاً هیچگونه الگوی پیشفردی برای اطلاق به اصل سازنده خود در بخشهای اعظم سوم و چهارم هستی ندارد. میبینی که ذهن ناخداغه تابع اراده آگاهانه بشر است. یعنی قدرت نامحدود آفرینش تحت فرمان ذهن آگاه فرد قرار دارد. استفاده شایسته از این قدرت به قوه تشخیص و اراده آزاد او وستگی دارد. بهتر است همیشه به خاطر داشته باشی که هیچ ضرورتی ندارد شیبه های دست یابی به کارکرد ذهن ناخودآگاه را در ایجاد نتائج مطلوب بررسی کنی. جزء محدود نمیتواند چیزی را به قدرت کیهانی گوش زد یا یادآوری کنند. به عبارت ساده کافیست در هماهنگی با خواست اک عمل کنی و نگران این نباشی که این قدرت چگونه به درست می آید تو مدرایی هستی که از طریق آن تجزیه ناپذیر به تجزیه پذیر بدل می شود و این وجه تمایز به اقتضا صورت می گیرد. به منظور به گردش در آوردن علت هایی که منجر به تحقق خواسته های اک در راستای تو می شوند شناخت تنها لازمه است ذهن کیهانی ابتدا مجبور است روی فرد و از مجرای تمایلات او عمل کند و فرد هم فقط میتواند از مجرای ذهن کیهانی استفاده کند این دو یکی هستند فعلا تا همینجا کافی است اما باید به خاطر داشته باشی که اینها آموزش های طبقه خاکی بوده و در طبقات برتر هستی اعتباری ندارند شب خیل